آیا از تنافس تر هوای آلوده جایی بلب آیا شنیدن صدای بوق ماشین ها و سر و صدای مردم گوش هایتان را آزار می آیا از دیدن جوب ها یه پر از زباله و دیوارهای پر از اعلامیه و ساختمان ها که قد و قد خسته شده اید؟ دیگر نگران نباشید.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 ماده تضمینی مادام العمر بدون نیاز به پاسپورت و مدارک شناسایی. من الان حدود یک سال میشه که با خریدن این ملک زیبا در جزیره گامبولا واقع در آبیان سارام اینجا زندگی میکنم و واقعا راضی هستم. بومیان اینجا به قدری مهربون و خونگر من که ترجیح خروج از جزیره را هم نمی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 شرید خانه رویایی خود را در قلب جنگل های گامبولا تحویل بگیرید فرار از زندگی ناپاک با املاک گسترانه پاک